اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبارسه طب معصومین بحثمون در حبت سودا نیز بحثمون در سیاه دونه بود و اقسام سیاه دانه دمشقی غیر دمشقی و مانند او حتی اکسای دمشقی و مانند او رو دکتر حسین میرحیدر تو کتابش مومن آورده حالا این کتابی که میخواییم بخونیم از سیاه دانه دانه شفا مترجم سید حسن ناصری به احتمام هادی کوهستانی صفحه 165 امام رزا علیه الصلاة و سلام برای جلوگیری از زکام در فصل برای جلوگیری از زکام در فصل زمستان از بوئیدن گل نرگس از بوئیدن گل نرگس مکن و برای پرهیز از زکام در فصل تابستان از سیاهدانه استفاده کن این هم مومن روایتش در طب الائنه صفحه 483 میباشد بعضی این دیگه هست مؤمنان در رساله زهبی ومانندو مثلا در فصل زمستان داره اصل بخورین اصل رقیق شده طبیعی در فصل تابستان قصه خیار بوتهی طبیعی گلخانهی نه درختی نه اونها هم جلوه زکام رو میگیره چون آبریزش بینی گاهی برخواسته ای از حساسیت تسلیه و برخواسته از و علامت از یک بیماریه درست شد مؤمنم؟ حالا خواستم بگم دونو دارو تجویز شده اگر کسی کم خونه یا ضعف ویتامین داره یا سیستم دفاعی بدن ضعیفه، حالا میگیم اصل رقیق شده یه صبح گاهی در زمستون بخوره روایت هم که داری یه بار دیگه نه حساسیت فصلی دارد میگیم بوعیدن گل نرگس که فوائد زیاد داره یکیش هم اینه در زمستون مانع زکام میشه و جلوی پیشرفت و طول مدت زکام رو چی میگیره یه بار دیگه شخص التهاباتش زیاده در دستگاه گوارش و عطشش زیاده به نوع عطش کازر حالا آیا بیماری استسقا دارد یا بیماری قند و دیابت داره که یکی از عوارضش تشنگی کاذبه خب اینجا میگیم مغز خیار بوتعی بخوره هم ضد جزام در تابستان هم عطش کاذبش خوب میشه و هم پونزده واحد قند خونش میاره پایین اگر مغز خیار بوتعی را با تلخش بخوره با تلخی خیار درست مومنان؟ آه. پس اون روایت اول منافات با روایت دوم نداره هر دوشم از امام رضا علیه السلام بلکه نحوه کاربردش در افراد خاص با بیماری‌های خاص فرق میکنه اینم مؤمن این دو روایت یکجا توضیح دادم روایت بعدی از امام صادق علیه و السلام که حضرت فرمود سیاه دانه رو با نمک مخلوط کن چه پودر نمک سنگ این دیگه توضیحش از من چه پودر نمک سنگ چه پودر نمک دریا ولی در هر دو صورت باید چنین نمکی سالم بهداشتی باشه بهداشت سالم بهداشتی باشه حال اگر سیاه دانه رو با نمک مخلوط کرده و بخورید شفای هر دردیه بجاز اجله حتمی. حالا افراد مختلفاً نیازبندی مختلف مثلا کسی که لقی داره و تورم لوزه سیادنه با نمک براش خوب کسی درصد سودیوم بدنش کمه و اختلالات ایجاد برق مستقیم در قلب شبکه پورکنج قسمت گریه هیست داره و ما تو بحث این پالکس ها نیاز داریم به سودیوم لازم حال اگر سودیوم بدنش کمه خب نمک تاام سالم در جیره قضاییش باید باشه مخصوصا اول و آخر قضا حالا هم مشکل سستی کمر دارد و ضعف عمومی هم مشکل چی؟ ایجاد جریان برق مستقیم ضعیف چون حرکت سالم کل بدن به پمپاج صحیح خون سالم در کل بدنه یعنی انقباض ازولانی قلب باید چی باشه؟ صحیح باشه آریتمی قلب نامنظمی زربان قلب نداشته باشه حالا چه نیرویی میخواد همین ازوله قلب رو انقباض بده؟ برق مستقیم ضعیف میخواد اون نیاز به چی داره؟ یکی از نیازاش نیازه به سدیوم کافی داره نه سدیوم فشورده ها یا سدیوم اضافی اونم بیماری میاره هم برای فشارخون شخص و هم برای کلیه هاش داره مثل پتاسیوم اضافی نه به مقدار لازم اگر بدنش کم بود داره میتونه سیاه دونه با نمک بخوره برای اون مسئله هم خوبه تو بحثای های رادیوگرام قلب و اینها خب این روایتی که خوندم در طب الائم صفحه 530 حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاة و سلام فرمودند در سیاهدانه شفای هر دردی است من برای طب و سرع یک قسم از تشنج 50 نوع تشنج دونیم این یک قسمیه حالا این سرعش، سرع کودکان یا سرع میانسالان یا سرع کونسالان یا جوانان و نوجوانان اینو هر کدوم بحث علمی در حضرت می فرماید در سیاه دانه شفای هر دردیه من برای تب و برای سرع و برای چشم درد و برای شکم درد و هر دردی که بر من عارض می شود از آن استفاده می کنم از نحوه مصرف چجور باشه با زمینه باشه یا بدون زمینه باشه مقدار مصرف وزن مصرف در چه طول زمانی این همه اون آقا طبیب الاتباعه پزشک پزشکانه حالا از نظر تخصصی گیاهی و داروی که تولید شده و تو داروخون امام رضا هست مثلا سیاه دانه خاصیت درمانی کمک به درمان ها جُزوه خانواده از حیث گیاه شناسی جُزوه خانواده آلا لگان اندام دارویی که استفاده میشه از میوه گیاهه ترکیبات شیمیایی مثل تیمو کیتون تیمو تیتون که خاصیت ضد تشنج دارد یادتونه گفتیم کسانی که سر دارن یا تشناج دارن میتونیم از گل رایح یا هو فارقون به اضافه جدا جدا هم گل بهار نارنج این گل رایح یا افتیمون رو صبح می‌ذاریم یه قاشق چایخوری در یه استکان آب جوش گل بهار نارنج یه قاشق چایخوری در یه استکان آب جوش اینو می‌ذاریم چه اول مغرب شب قبل خواب یادتونه گفتم فی فواید و مما لا تحصا. خیلی فواید در سیادون است که قابل شمارش نیست از باب ذکر مصاب امام صادق علیه السلام میفرماید تا هزار بیماری درمان میشه و علم جدید به کشفیات و تحقیقاتشون تا 400 بیماری درمان میکنه داروی سومش چیه سیادونه با اثر شب قبل خواب بخوره گفتم خیلی فواید داره یک شم خاصیت ضد تشنج داره در اصلش کم باشه حتی در سرع خاص یا ام مصبییان که سرع کودکانه تشنج در کودکانه نیز مفیده. یا یاتون دیروز گفتیم سه تا یا پنج تا یا هفت تا دونه ریز سیادونه باشه باتی این آبش یا پتی این اصلش حالا خواستم این کلمه رو تصور کنیم به زبون جدید تو بحث دارو شناسی ترکیبات شیمیایی تیمموکیتون که خاصیت ضد تشنج دارد یا نیگلون یا ملانتین یا نیگیلین یا تانون خواص درمانی کمک به درمان تشننج درمان سرگیجی ناشی از مشکلات گوش داخلی سوالی که فرموده درمان سرگیجی ناشی از مشکلات گوش داخلی بهترین زمانش گفتم که یه شب قبل از خواب کمک به درمان روماتیسم در مصرف موضعی یادتونه قبلا هم تکرار کردم انشاءالله امروز هم اگر وقت کردیم میگم انواع روماتیسم انشاءالله میگم و یک روماتیسم خاصی هم که درمان بیماری بهجته انشاءالله ذکر میکن پس کمک به درمان روماتیسم در مصرف موزی ماساژ پماد کمک به رفع نارسایی‌های کبدین ضد نفخ و مقوی معده که قبلا اینا را هم را گفتم با روایات کمک به درمان میگرن گفتیم شسن و در داریم چادن وش میگرنیه علاوه بر گل رائی که هو فارغونه و گل ساعتی که داروهاش قبلا گفتم میتونی از سیاه دونه با اصل هم استفاده کنی در درمان انواع میگرن افضایش دهنده شیر مادران شیر افزاست. همان گونه که چای رازیانه شیر افضاست راز... سیاه دانه سیاه دانه با اصل هم خیلی فوائد داره یکیش هم چیه؟ شیر افضاست در مادران شیرده کسانی که بی اختیاری در دفع ادرار دارن یا مثلا بیماری چکمیزک ریزش بی اختیاری ادرار دارن خب اینا چی میگیم معاملات؟ یه بار میگیم جوشانده پوست خارجی مغز گردو که سخت و چوبی و قهوه رنگی محکمه جوشانده این فقط سه شب هر شب یک استکان تازه جوش بخوره بیماری چکمیزک که ریزش بی اختیاری ها چه در کودکان چه در بزرگسالان حتی در بیماران دیابتی که با گاهی به خاطر قند خون بالا گاهی به خاطر نوسان قند دچار بیماری چک میزک میشن یعنی ریزش بی اختیاری ادرار میشن دومیش چی بود قبلا ها گفتیم حتی در درمان شب ادراری کودکان یا بیش از اندازه به دستشویی رفتن در بزرگ سالان. در ساعت چند بار ممکنه بره نیم ساعت یک ساعت اینجا گفتیم قولنجان یا خولنجان که تو روایات بود یا خسرو دارو گفتیم اندازه یک عدس زیر زبونش بذاره تا آب بشه قورت بده در کودکان گفتیم اندازه یک ماش خولنجان این دوتا سوم مباعثه خودم سیاه دونه با اصل اینم در درمانه هم میزک خوبه که ریزش بی اختیاری ادراره و همچنین مومن در درمان شب ادراری در کودکان مفیده اینم تا اینجا کمک به درمان بی اختیاری ادراری مقدار مصرف و روش تهیه در هر مورد متفاوت است ولی به صورت کلی در مصرف خوراکی می توان از دانه های روغن گیاه یعنی همی سیاه دونه به همراه اصل استفاده نمون که این قبلن روایات خودمون خوندین عوارض جانبی اگر کسی بیش از اندازه یا زیاد روی در مصرف سیاه کنه دچار مسمومیت میشه همچنین اگر در نور مستقیم خورشید باشه یا لامپای نکمدادی یا لامپ پروژکتور یا لامپای دیویس به بالا این ایجاد گازم خردل میکنه باید به فرمایشات دکتران محترم حاشیه بزن. این رو اضافه کن که گفتن این بقیه رو یادشون رفته بگن این رو باید چکار کنیم حاشیه ده. حتی ششای شخص رو درگیر میکنه و دو برانشیت ریه میشه بله مندگاریش در اصل تا یک ساله اگر بلا فاصله پود کردی و قاطعی اصل کردی و دور شیشه تو با مقبای سیاه یا این های روی گاز هست آلومینیامیه با این ورقها دور شیشه رو که نور بهش نخوره نه نور آفتاب نه نور لامپ دیویس به بالا یا پروجیکتور یا مدادی پای مدادی اون وقت مندگارش مؤمن و فائدش تا یک ساله اما در مجاورت هوا زود باکتریایی میشه قارچی میشه و زریع به ایجاد بیماری بیشتر میشه دیدیم مؤمن ها اینا رهی آدم باید از این متخصص از اون متخصص یا تجربه به دست آورده باشیم این ستا حرف هایی که زدمو باز به فهمهش این دکترای های محترم حاشیه بزنین حالا دیگه اسماش نیم برم دیگه پس این ستان هم حاشیه بزنید مصرف در بارداری و شیردهی در بارداری مصرف سیاهدان ممنوعه اما در دوران شیردهی مفیده سبب ازدیاد شیره مادر میشه اما در بارداری نه نیست قاعده امکان سخت جنین هست و مادر قبلش دوچاره لک بینی میشه پس موارد منع مصرف چیه تو بارداری مصرف نشه در حدیث مفصلی در حدیث مفصلی جبرئیل امین به پیامبر امین و همچنین جبرئیل امین به حضرت موسی علی نبی و, و علی السلام نسخه مفصلی داده که در اون نسخه مفصل حضرت جبرئیل و حضرت موسی ذکر سیاهدانه هم برده شده میتونید به کتاب تبل تب الائمه صفحه 540 مراجعه کنیم روایت قبلیشم در صفحه 460 یکی از بیماری ها بیماری آدیسون به نارسائی قده فوق کلیوی بیماری آدیسون گویم قده فوق کلیوی مجموع هرمون هایی به نام کورتیکو استروئید و اندروجین ها تولید میکند. بخش خارجی قده فوق کلیوی یا کورتکس تولید کورتیزول نموده که این کورتیزول خودش یک هرمون ضد استرسه یعنی ضد نگرانی مستمره و بخش داخلی قده فوق کلیوی هم که مدولا نام دارد توجه اگر شخصی به بیماری آدیسون مبتلا باشه و خودشو درمان نکنه دو بیماری دیگر میگیرد یک جراحت پوستی میگیرد دوم دچار دو عفونت داخلی می شود بیماری آدیسون دو مدل است گاهی نارسایی اولیه دارد که به خاطر مشکلات درون قده فوق کلیوی است مثلا دچار بیماری خود و یا بیماری سل و یا عفونت قده فوق کلیوی و یا انتشار سرطان به قده فوق کلیوی و یا خونریزی از قده دارد و گاهی نارساییش اولیه نیست دوچار نارسایی سانویه است که به خاطر مشکلات دیگر بدنه مثلا مشکل قده هیپوفیز در مغز داره یا کسانی که داروشیمیایی کرتیک و استروئیدها مصرف میکنند اینها هم دوچار نارسایی ثانویه قده فوق کلیوی میشن پزشکی جدید پزشکی گیاهی میگم میگه آخر سر میکن چون بعضی دکترای محترم در داخل و خارج کشور خیال میکنن ما مثلا طب مکمل میگیم یا مال عهد بغ میگیم و به مسائل پزشکی جدید نیستیم حالا برای اینکه که دل این دکترای خارجی و داخلی نشکنها دارم میگم مطالب شما هم کاملا رسیدگی میشه دلتون نشکن حرفای خوبتون بیان میشه حرفای اشتباهتون هم بیان میشه ما طب مکمل هم همینه ما در حکم خدا با هیچ شوخی از چه طب مکمل چه طب قلبی شرقی به کسی هم بر نخورا تو بحثای پزشکی جدید برای درمان بیماری آدیسون گاهی از هورمون درمانی استفاده می کنند. مثلا کورتیکو کو استروئید خوراکین مثل هیدروکورتیزون که داخل ورید تزریق می شود دو مثل پردنیزون سه مثل اسیتات کورتیزون، این بحث هرمون درمانی با داروهای خوراکی یا تزریقی دوم تمامی اینها به صورت تزریقی در صورتی که بیمار علاوه بر داشتن بیماری آدیسون استفراغ استفراغهای شدید هم هست اینجا این آمپول ها تزریق می شود یا این قرص ها داده می شود که بیشتر تزریقی یا تماما سوم اگر زنی هورمون کم دارد اینجا آندروژن تعویزی آندروژن تعویزی که در زنان برای کم بوده این هرمون دهیدرو اپینادستران تجویز می شود که سبب بهبود رضایت و میل جنسی این بانوان مبتلا می شود مطلب چهارم تجویز نمک زیاد در مواقعی که چنین بیمار ورزش کرده در هوای داغ و گرم تابستان یا محیط گرم بوده مثلا مثل های ورزشی سرپوشیده شوفاج داره همه دوم بیماری که درد معده‌ای و روده‌ای و اسهالی دارد باز تجویز نمک زیاد در این موقعش سوم بیماری که علاوه بر که دچار بیماری آدیسون ها جراحی کرده به نوع جرایی داخلی یا عفونت داخلی داره یا استرس شدید داره چون تعریق شدید داره تو قسمت استرس یا در عفونت عفونت ها مزاح شده باز بنوانه یک تریاق تریاق اکبر تو در شیعه میگه یک پادزهر قوی که رو دست نداره نظر نمک زیاد باز تجویز میشه حتی تو پزشکی جدید اما اگر بیمار دچار بحران بیماری آدیسان شد یک خطر جدی برای سلامتیش هست زیرا که فشار خون و قند خونش بسیار پایین میاد وقتی قند خونش بیاد زیر هفتاد چاره بیماری هیپوگلیسمی میشه یعنی افت شدید قم این داره رو به موت میره یعنی مرگ به چشمش داره میبین یا فشار خونش که بیاد به زیر 7 به 6 و پنج برسه در حالت اغما میره رنگش مثل گچ سفیل میشه دست‌هاش موقع لرزیدن چشماش کره چشمش شروع میکنه دواری چرخیدن رو به موت داره میره خلاص فهم بودیم پس چه هیپوگلیسمی و چه به صورت اغما هر دو شخص رو به طرف مرگ میبرد. پس در بحران آدیسان که یک خطر جدی برای سلامتی فرد مبتلا چون فشار و قند خونش بسیار پایین میاد. عکس پوتاسیوم خونش میره بالا. این مثلا باید سه باشه دو باشه مثلا خب یه محتره میاد شیش. پوتاسیام خون وقتی بالا براه خطر مزاعف میشه چون ممکنه هر لحظه کلیهاش دوچار ایست بشن گرفتیم مؤمن چی گفتن؟ محتاج به دیالیز بشین. حالا در بحران آدیسان مؤمن ها بحثایی مثلا درمانش رو میان تزریق هیدروکورتیزون که داخل ورید تزریق میشه یا مثلا محلول سالین با شکر میدن محلول نمک با شکر میدن نظیر پودر ORS در بیماران اسهالی در تابستون میدن مؤمنه اینم به خاطر اینکه فشار و خونش افت شدید نداشته باشه علائم عمومی بیماری که آدیسون داره چیه علائم عمومی این بیمار در اثر گرفتاری قدرت فوق کلیوی در دوران بزرگسالی که غالبا دست میده نشانههاش کمی فشاخون، اختلالات گوارشی، تشکیل رنگینه‌های های روی پوست و قشاهای مخاطی میشود. علائم بیماری آدیسان به نوع اختصاصی درمانش هم همینجا میگم علائم حادشم هم میگم درمانش هم میگم از طب مکمل و گیاهی و طب اسلامی که یکیش مربوط میشه به سیاهدانه که دو روزه داریم مباحثه میکنیم علائم بیماری آدیسان یک تیره شدن پوست به دلیل افزایش رنگدانه های پوست، دو ضعف عضلانی و خستگی مستمر، سه، کاهش اشتها و کاهش وزن بیمار، چهار تکه تکه شدن پوست، پنجم علاقه زیاد بخوردن یعنی اشتها کاذب خوردن نمک و زیاده روی در مصرف نمک ششم اسهال هفتم استفراغ هشتم درد عضلانی یا درد مفصلی نهم کارش شدید قند خون یا هیپوگلیسیمی دهم افسردگی که سرماخوردگی روانیه زودرنجی اندک رنج تحریک پذیری دو دل دلنازوکی میشه تا میگه بالا چشمی در اوه گریه کردم. با این که کتکش نداری خب اینها علائم دهگانه یا سیزدهگانه بود از علائم خاص آدیسان درمان یک انار شیرین یا رب انار شیرین بحث رمان الحل دوام شیره خورما بسه تمر همه رو بحثش سوم عسل آویشن نعنا چهارم گوشت بلدرچین با زرشک خام پنجم ارده با عسل ششم مصرف سنجد هفتم مربای سیب و مربای به نهم یا دهم خورما بعد قضا هفت عدد که تو وصال شیعه جلد هفده است چاپ اسلامی تهران دهم مثلا عرق نعنا یازدهم گل باهار نارنج با اصل پس اگر این علائم خاص آدیسون بودا داروهاش هم گفتم برای تک تک این علائم ها داروی ضدش گفتیم به اصطلاح طب گیاهی تب و مزاج شخص رو بشناس داروی ضد تبعش بده بهبودی سریع حاصل میشه در صورت حاد شدن بیماری آدیسون علائمی دیگر بروز میکند یک درد قسمت پایین کمر دو درد شکمی دلپیچه های شدید سه درد پاها چهار اسهال شدید توان با استفراغ شدید که باعث از دست دادن آب و املاح بدن می شود و شخص روبه ضعف مفرط می رود پنجم کاهش شدید فشاخون شیشم عدم تمرکز نه تمرکز فکر نداره دیگه هفتم افزایش پوتاسیام خون بیش از اندازه درمان این هفته چیه که علائم حاد شدن بیماری آدیسان بود یک سیاهدانه با اصل که مبارسه چند روز سیاهدانه با عسل یک قاشو مربو خوری و یک قاشق پلو خوری اصل مخلوط خوب جو بعد بده دوم دو نقضه گردوی پخته سوم روغن بنفشه طبی هم میخوره و هم ماساژ میده دست پاشر چهارم روغن سیاه دانه. فقط ماساژ میده پنجم قبل از غذا سوسنبر و بعد از غذا یه استکان آب سیب اصل میخوره باز یه میره و سپس نصف استکان عرق نعنا میخوره شیشان مؤمنا بعد از بین روز یا اسرانه هر کدوم خرما خورما میخوره یا طبق روایاتی که داریم بعد از غذا هفت عدد خورما بخور اما بعد از اون کاری که قبلش توضیح دادم یعنی سوسنبر قبل از غذا راه رفتن بعد از غذا یه استکان آبسیم میخوره دوباره یه مختصر را میره نصف استکان عرق نعنا میخوره یه مختصر دوباره را میره پنیدیق دردیقی بعد هفته خورماره میخوره تصالب فهم بودیم؟ یا نه وسط روز یا اسرانه هر کدام هفته خورمار میخوره کلا میشه اربعه تا عشر چهارده تا شیشون مؤمن اهلیجات در اصل بخوره برای اینکه یشد العقل و حالت بازخانی و باز توانی و تمرکز فکر قوه مفکر فعال و برداشت اطلاعات از حافظه موقت قوی باشه و دچار نسیان که فراموشیه و عدم تمرکز فکر و آلزایمر زوال عقل پیشنمنده و دمانز، زوال عقل نشه اینجا احلیجات در اصل پرورنده بشی همون فرمایش امام رضا علیه السلام در رساله زهربیه حلیله سیاه، حلیله کابولی، حلیله زر اینا مثلا درگرم، درگرم، گرم. در, در, در یک کیلو عسل این سیگرم، پودر، این رو در یک کیلو عسل خوب هم میزنی مریض روزی یک قاشق مربع بخوری از این مخلوط بخوره همچنین میوه خربازه میوه خربازه شب قبل خواب اگر سیاه دونه با اصل شب قبل خواب خورد دو ساعت قبلش یا میذاره صبح زود یا سحر دیگه بستگی داره مریض که میلش میکشه ولی برای اینکه تداخل داروی نشه بین داروهای گیاهی یا داروهای شیمیایی، بین خودشون یا بین دوتاشون باید دو ساعت فاصله باشه تا تداخل دارویی پیش نیاد خب خربوزه هم یکی هم میبه لیمو شیرین یکی هم آب جوش و آب آشامی دنیه سالم به میکه به میکه بخوره مصن مصن لا عبن عبن این هم خیلی نقش ویژه داره برای اینکه که آب از دست رفته بدنش که به خاطر استفراغ یا اصحال های شدید مکرره آب بدنش تامین بشه و محتاج به سرم خوراکی نشود اون املاحه دیگه ویتامین های دیگه هم که گذاشتیم بدهن خاطر بود پس از نظر طب مكمل و طب گیاهی و طب اسلامی ما داروهای متنوع گوناگون که واسهتون توضیح دادم و در درمان بیماری آدیسون چه به صورت غیر حادش چه در صورت حادش مطلب داشتیم اللهم صل على محمد وآل محمد